مرد بیمروت زن است و عابد با طمع ره زن ای بی‌ناموس کرد جام سپید بهر پندار خلق و نام سیاه دست کوتاه باید از دنیا آستین چه دراز و چه کوتاه